بعد از ده سال کوشش و تلاش در راه کشف رموز خلغت و اسرار آفرینش به وسیله وهمن یعنی فرشته نیکندیشی و خرد به دانش وعی بر او نازل شد و به پیامبری برگزیده شد ولی از آن به بعد در یک جا ساکن نشد برای سیر آفاق و انفس درویشوار از آزربایجان به طرف کشوری که به نام بعدن به نام ماد و پارس خوانده میشد حرکت کرد همینطور به طرف سیستان و بلوچستان تا اینکه رسید به بلخ پایتخت شاهگشلاس به کیانی در تمام راه حرفی میزد گفته از حقیقت افشا میکرد و میگذشت. زیرا میدانست مردم حرف دروغ و، حرفهای عجیب و غریب را زودتر از حرف راست میپذیرند. از این جهت هر جا میرفت مردم دورش جمع می و به طوری که در گات بارها اشودرتوش میفرماید ای کسانی که از نزدیک و دور برای شنیدن گفتارم آمده اید آنچه که من میگویم برای نخستین بار است که شما میشنوید از این رو بسیاری از دانشمندان معتقدند که اشودرتوش نخستین پیامبر توحیدی بوده و این که همیشه در دوش را در هینی حالتی میکشین یک انگشتش بالاست یعنی او برای اولین بار گفت خدا یکیه کار و کوشش و فعالیت و به دست آوردن ثروت از راه حلال و به سروری و توان توانایی و نیرومندی رسیدن دستور اشو در توشته. میفرماید سعی کنید با زور و زر نیرومند بشید و این قانون طبیعت است. شما در جنگل در دریا در هوا نگاه کنید میبینید حق با زوره اون که قوی تره بیشتر باید بخوره و تولید نسل بیشتری هم بکنه ولی اونی که ضعیفه نه قضای خوب گیرش میاد و نمیتونه تولید ناز کنه حالا قانون جنگل، قانون دریا، قانون هوا، مگه قانون پروردگار نیست؟ مگر قانون خدا نیست؟ این است که یکی از شعرهای ایران میگه برو قوی شو اگر لذت جهان خواهی که در مرام طبیعت ضعیف پامال است مرگ برای ضعیف امر طبیعی است هر قوی اول ضعیف کشت و سپس مرد پس باید قوی باشیم. موقعی که ضعیف شدیم بدبختی برای ما پیش آمد موقعی که ضعیف شدیم اون سلسله ساسانیان با اون عظمت و اون دین زردشتی اون زمان با اون قدرت به این درجه رسید ما میگیم تنی و روانی گیتی و مینو اول تن بعد روان اول گیچی بعد مینو تا تن درست نباشه روان درست نیست عقل درست نیست عصب درست نیست عقل سلیم در تن سالم است تا این گیچی را بهش دل نبندیم و آباد نکنیم و وسیله خوشبختی خود و دیگران فراهم نکنیم آخرت برامو خوب نخواهد بود این دنیا مزرعه آخرت است هرچه در اینجا کاریم، در اونجا خواهیم دروید ولی بگیم دنیا پوچ است، دنیا فانی است فکر آخرت باشیم، نه دنیا خواهیم داشت و نه آخرت دروغ پرست نمیخواهد پیروان راستی، ستوران یعنی چارپایان را در کشور بپرورانند و دهند ای مزدا، برای نیکان، زندگانی جهان آ... آینده را بیارای یعنی آدمی که خوب پروردگارا اون دنیا بهش خوش بگذره. و از برای سطور پروران و کشاورزان خوشبختی پیشار تا آنان از برای فراهم ساختن خوراک و روزی ما با دلگرمی به کار پردازن. کسانی دوست داره مردم کشورند که در برابر فرمان مزدا به کار و کوشش پردازد و کار بایسته خود را به جای آورد اینان کسانی هستند که از برای در همسکستن خشم از سوی پروردگار برانگیخته شدند کرپان که باز طبقه از پیشوایان مذهب پیش از در بودند کارپون ها نمیخواهند در برابر آیین کشاورزی صرف فرود آورند و پیوسته در پی آزار شطورانند ای مزدا تو خود در روز بازپسین به کارهایشان رسیدگی و داوری خواهی کرد و آنان را برابر کردار زشتشان در دوزخ جای خواهی داد کسی که دوستدار راستی را خورم سازد خواه از پیشبایان یا از بزرگان یا از برزگران یا کسی که با غیرت و کوشش از سطوران نگهداری و پرستاری کند چنین کسی در آینده در خوشبختی و کام روایی خواهد زیست یسنا بند دو لردوشت به طوری که از آیات عوستا برمیآید، طرفدار صلح و آشتی بود و برعکس جنگ و جدال و خونریزی و به طوری که در گات های بیست و نشون میده زمانی که اشو در توش به پیامبری برمی گذیده می فرق مختلف آریایی به جان هم افتاده بودند. و سر تسلط بر یک زمین به خصوص یا یک ثروت به خصوص همدیگر را کشت کشتار میکردن به طوری که روان آفرینش یا روح خلقت دست نیاز به درگاه پروردگار دراز میکنه و میگوید پروردگارا برای چه مرا ساختی چرا مرا بیافریدی ستم و ظلم و ستیز و خشم مرا به ستوها آورده و از تو درخواست نگهبانی میکنم کسی را بفرست که بتونه مردمان جهان را از خونریزی و کشت و کشتار ممانعت کنه و این است که عشوذرتشت از طرف پروردگار برای همین منظور آمد و ما در پیمان دینمون میخانیم مزدی اصنو اهمی مزدی اصنو در من مزدا پرستم مزدا پرستی که در تشت آورد فرورانی آستو تسجا فرور تسجا من میستایم دین پاک مزدی را نداستن تشام خیط و دسامشانی که جنگ و جدال را دور میکند و اصلحه را به کنار مینهد و آموزنده خیت و داشام روح برادری و اشویش و این چدر و کشتی که ما داریم علامت صلح و دوستی است چدر پارچه سفید علامت صلح و دوستی بود از زمان زرتوش به بعد و الان میبینیم تمام دنیا وقتی میخوان صلح کنند پرچم سفید افراشته میکنن همین چیزی که از در زرتشت شروع شد کشتی از پشم گوسفند سود رب... سودرسان درست میشه یعنی ما باید مثل گوسفند سودرسان و مفید و بیازار باشیم و این شعار دین زرتشتی است ولی در موقع حجوم دشمن با باید دفاع کنیم دفاع از وظیفه هر موجودی است. در جنگل و هوا و دریا و زمین نگاه کنید، هر موجودی سای میکنه در برابر قوی تر از خودش از خود دفاع کنه پس دفاع هم وظیفه اصلی ماست ما نباید در حمله پیش خدم باشیم ولی وقتی دشمن به ما حمله کرد باید از خودمون دفاع کنیم و دفاع هم عقلان و مادن و معنوان همه باباد باشه اشو در توش گوید ای اهورا به روان آفرینش تاب و توانایی بخش اینجا روان آفرینش مقصود روح خلقت تمام موجودات روی هم در روان آفرینش تاب و توانایی بخش از راستی و پاک منشی نیروی برانگیز که از پرتبان مهر و آشتی در جهان پدیدار گردد الان این انجامنهای بین المللی برای این درست شدند که نگذارند یک ملت قوی تر بر ملت ضعیفتر حمله کنه و باعث عذیت و آزارش بشه و اون روز عشدرتوش در این فکر بود که نیروی برانگیز تا قوی نتونه بر ضعیف فشار بیاره حالا بشر امروز اون نیرو را انجامن بین المللی و انجامن صلح و اینا چی کردن ولی باز هم میبینیم که اون طوری که باید شاید به وظیف خودشون انجام نمی, ا... ا... ادام نمی کنن آری ای مزدا میدانم که خود آن را توانی برانگیخت کسی که در پی آزار دیگران براید دوست بودپرستان و دیوان بوده و از اندیشه نیک دور و از اهورا مزدا و آین پاک او روی گردانن. زرتوشت مردم را از آشامیدن نوشابه های مستیاور باز می دارد در یسنای 48 بند ده می ای مزدا چه وقت مردم به گفتار آسمانی پی خواهند بود و دست از نوشیدن این آشام مستیاور ناپاک خواهند کشید آن چیزی که زشت کرداران با آن مردم جهان را میفریدند و به کار بد وامی دارند اینجا می بینیم بر علیه نوشابه های مصدی آوره ولی بدبختان بعدا در زمان شاسانیان در اثر پیروی از مذهب مسیح و اینا میگیم خود عشو درتوشت هم ابشتای بخونن و در اونجا می و شیر و به و نار و اینا گذاشت و این روایات بش افزودین در طی این راهی که طی میکرد شو در توش با دو دسته مخالفین روبرو بوده میشه اول کاوی ها و دوم کارپان ها کاوی ها همون شاهان و شاهزادگان سلسله کیانیان پیش از اینکه به دین 아슈ر زرتوش در بیان این نشون میده با پیشرفت دین زرتوش مخالفت میکردند و اینها به نام کاوی ها و اون درفش کاویانی هم که معروفه این از زمان کیانیان متداول شد در بین خاندان شاهان ایران با دوم کارپانها کارپانها همین پیشوایان دینی مردمان هند و ایرانی بودند که بعضی‌هاشون مشرک بعضی بت پرست و بعضی طبیعت پرست بودند این دو دسته بودوتن دشمنان اشودار توش بود که بارها در گاتا اشودار توش از دشت این دو طبقه از دشمنان به درگاه اورامزدا می نالند در یکی از آیاتی که یعنی یشنای چلوچار بنده 20 در توش می‌فرماید آیا دیوها از شهریاران خوب بودند اینجا دیوها به معنی خدایان و وشلو ایزدان هند و ایرانی که به نام دیوها خوانده میشن و اینها بعضی هاشون وقتی پادشاه میشن این لغب را با خودشون داشتند یا مذهب دیو داشتند آیا دیوها از شهریاران خوب بودند آنان به چشم خود میبینند که چگونه کرپانها و اوسیخشا اوسیخشن باز یک عده از پیشوایان دینی اون زمان بودند کرپانها و اوسیخشا برای خوشنود ساختن خدایانشون چا به چارپایان شتم روا داشته و خون آنان را برای خدایان خود میریزند و کاوی ها به جای اون که چارپایان را بپرورانند و به کشاورزی بیافزایند آنها را همیشه به ناله در میآورند. حالا یعنی چه این ناله اگر به ترجمه ورحرامیشت کرده 17 نگاه کنید اونجا هم بر علیه این مردمان بدپرست یعنی دیوان میگوید دیوان ویانبوره که ویانبوره نام دیوان نام اینها به جای اینکه خداوند یکتا را پرستش کنند به این خدایان طبیعت گوسفند و گاو قربانی میکنند و طرز قربانی کردنشم اینه که با چوب به پشت و کمر و دست و پای این حیوانات میزنند تا اینها به ناله و فریاد برایند و وقتی اینها ناله میکنند اینها دلشون خوش میشه که خداوند این نیازشون را پذیرفته و قربانیشون را قبول کرده و اونجا میگوید که این دیوان ویانبره با چوب کمر گوسفندان و گاوان را میشکنند استخوانهای آنها را در هم میشکنند و اونها را به ناله و فریاد برمیآورند و اینها را خیال میکردند کار سوابیه کار خوبیه و قربانی در مذهب زرتشت در طبق این دستور برای خوشنود ساختن اهورامزدا و امشاسپندان و ایزادان و روان درگذشتگان گناه بزرگی است اگر میخواهیم قربانی کنیم برای شکم خودمون بگیم قربانی میکنیم نه برای خوشنودی اهورامزدا اهورامزدا جان که به حیوانی داده ما جانش جانشو بگیریم و او خوشنود میشه یا روان درگذشتگان یا ایزادان و امشاسپندان پس این قربانی ها از ملل دیگر ما یاد گرفتیم گرچه ایرانیان قدیم پیش از در هم گوسبند و گاو و حیوانات را قربانی میکردند و زرتوشت به کلی قدقن فرمود دشمنان سرسخت اشو زرتوشت نه تنها در پی آزار و نابود، نابودی او برآمدند، بلکه با رشوه و پاره دادن به پیروان او و ترس و آزار آنان میکوشیدند تا دوباره آنان را به آیین پیشین برگردانند و هرگاه باز هم به دستور آنان رفتار نمیکردند در پی شکنجه و کشتار آنان برآمده خانه و آبادیهایشان را ویران میکردند بنابه گفته خود در زرتشت این کسان گفتار آسمانی را ننگین ساخته یعنی میگفتند این گفتار گفتار پلیده گفتار آسمانی نیست و دشمن آفرینش میدانستند و آشکارا با راستی ستیزه میکردند اینان هوشمندان را دروغپرس خوانده و چراگاه و خانه و آبادی های ایشان را ویران کرده و به روی پیروان راستی شمشیر میکشیدند. اینان به نابود کردن زندگی مردم کوشیده و در پی آن بودند که مردان و زنان نیک پارسا را به امید بهره فراوان از راه درست زندگی باز می داشتند. ازش در توش بارها پیشنهاد کرده بودند به او که هرگاه دست از آموزش یکتا و گسترش راه راستی بردارد او را به فرمان روایی بخش بزرگی از ایران برخواهند گزید. وگرنه او را به سختترین راهی خواهند و بارها آن وحشور در پاسخ آنان می‌فرمود: اگر هراینه بند بند تنم را از هم بکسلانید و استخوان‌هایم را از هم جدا سازید، دشت از آموزش خداشناسی و گسترش راه راستی بر نخواهم داشت این آیات در وندیداد کرده نوزده آمده چون دشمنان آن از هر سو ناامید گشتند بران شدند تا زردوش را با پیروان انگوش شمارش نابود سازند در این شخصی است که عشو در توش می فرماید ای مزدا کی شفید دم امید به در آید کی مردم به سوی راستی روح کنند چه هنگام پیغمبر تو خواهد توانست با گفتار خیش مردم را به سوی نیکی و راستی راهنمایی کند دروغ پرست نمی خواهد پیروان راستی افزون گردند ای مزده کیست اون که بتواند چنین کسانی را که به بدی و زشنامی معروف شدند از فرمان و نیرو بیندازد ای پروردگار مرا از آسیب دشمنان نگاه دار و کسی که براند شده تا من و دودمان مرا تباه سازد آزارش را از من دور گردان ای اهورا منم آن کسی که برای فرمان از دستورهای تو پایدار خواهم ایستاد به وسیله راستی شکوه هر دو جهان را به من ارزانی دار تا به کمک آن بتوانم دینداران را خورم و شاد گردانم یسناه چلا بند بنده بیست اما نخستین پیربان توشت. به طوری که نخستین پیروان اشود درتوشت میریوما پسر عموی خود اشود بود که بعدا نمیدونم به چه منظوری این عقیده بعدا وارد تشیع شد و پیغمبر اسلام هم نخستین کسی که پیروه شد پسر اموشت بود و در مدت ده سالی که در آذربایجان شروع می کرد به تبلیغ دین در شهرها دهات ده اینا ادهی کمی به او گرویدن در نتیجه موقعی که به پایتخت تخت در بلخ بعد از ده سال یعنی وقتی به چل سالگی رسید به پایتخت تخت رسیده بود شگ شز شنیده بود که یک شخصی پیدا شده که حرفهایی میزنه که خیلی عجیب و غریبه در بین این همه خدایان اون میگه فقط یک خدایه همون یک خدا هر توان توانای کل هرز آگاه دانای کل هرز خدا صاحب همه چیزه و این برای مردمان اون زمان خیلی عجیب و غریب بود این بود که روزی که گشتاز از شکارگاهی برمیگشت به طرف قشرش میرو اشودارطوش دم قش خودش را معرفی کرد و گفت منم اون شخصی که داره تبلیغ یک تا پرستی میکنه و آمدم در صورتی که پادشاه اجازه فرماید ما من با دانشمندان کشور ایران مصاحبه بکنم مباحثه با دینی بکنیم و اون وقت معلوم بشه که کدوم یک از ما درستتر میگیم. و مدتی در قصر پادشاه عشوذرتوش با دانایان مردمان اون زمان مباحثه دینی میکرد و همیشه خود شاگشتاز و همسرش و فرزندان و جاماسپ و اسفندیار و که جاماسپ و پشتن وزیر شاه بودند اینها حاضر می‌شدند و پس از اینکه اشوذرطوش همه این دانایان را مجاب کرد همون دربار آمد و دین اشوذرطوش را پذیرفت دیگر بر دینی مازردشتان به طوری که اطلاع دارید اویشتا اسم کتاب دینی است اسم زبان نیست چون کتاب دینی زردشتیان با یک زبانی نوشته شده بود که قرابت نزدیکی با سانسکرت زبان هندی ها داشت و یک زمانی ما ایرانی ها و هندی برادروار در تحت یک قوم و قبیله زندگی میکردیم یک زبان مخصوصی داشتیم که اصل اون زبان معلوم نیست چی بوده ولی بعدا وقتی ایرانی ها و هندی ها از یک دیگر جدا شدیم هندی ها شروع کردند به نوشتن یک کتاب ویدا به زبان سانسکریت ولی ما زردوشیان کتاب دینیمون که از اشودرتشت به ما یاد داده شده وقتی نوشتیم اسمش گذاشتیم اویستا ویستا و ویدا یعنی دانش و ا حرف تاکیده ا در زبان عوستا و فاسی دو معنی داره یکی نفع یکی تحکید مثلا وقتی میگیم عباده که عباده عبی انجام یعنی بدون آغاز یا شکم میگیم اشکم یا ستاره میگیم اشتاره این عباده حرف تاکیدیه که مثل در عربی میگن الکتاب القرآن یعنی اون کتاب به خصوصی و قرآن هم یعنی چیزی که قرائت میکنن اون هم یعنی کتاب پس عویستا یعنی عین دانش یعنی اون دانستنیهای های لازمه ای که برای حیات لازم بود و این به نام عویستا معروض شد پس از اینکه که گشتاز و درباریانش به دین عشو در تشت در آمدند در توشت که تیعیه کرده بود در مدت ده سالی که در انزوا گذرانده بود به نام گات ها معروفه و گات یعنی سرود و مناجات راجب زندگانی عشو در توشت در دنباله تاریخ زندگی اون دانشمندانی که در این باره چه در قدیم بین یونانیها و بعداً بین ملل دیگر درباره زندگانی اشوزار توش نوشتند مینویسند علاوه بر رسالت و پیامبری که از جانب خدا به عهده داشتند در چندین علم آن زمان اطلاع وافی و کافی داشتند که ما این در علم ستاره شناسی، پزشکی، دام پزشکی، روان پزشکی و مانند اینها و مخصوصاً شادروان زبی بهروز راجع به اطلاع اشوذرطوش نسبت به ستاره شناسی و زیش کردن مینویسد البته میدانیم که سال شمسی یعنی گردش زمین به دور آفتاب و نوروز را سرآغازش از جمشید میدانیم ولی بعدا به واسطه اشتباهاتی که در گردش زمین به دور آسمان و خورشید ایجاد کرده بودیم اون سال شمسی از مشیر خودش بیرون رفته بود و از در توشت دوباره اون را به جای خود استوار کرد و حتی اون پنج روز پنجه آخر سال که به نام گاتهای خود زردوشته داشته و دوشته و سفن تا مدوخشت وشتوهش وشت وش، زردوشت به اون اضافه کرد زیرا تا اون زمان دوازدم ماه ش حساب میکرد. در صورتتی که بعدا اش در توش دریافت که سال 360 روز تنها نیست سال شمسی 365 و, و روز و 6 ساعته. و این 5 روز خسه مستقه یا پنجه اینها ش در توش به اضافه کرد و همین طور، فهمید که اون شیش ساعت اضافی هر چهار سال یک دفعه که میشه بیست و چهار ساعت یک روز هم باید به اون اضافه کرد و اون روز را به نام می میخونیم ولی وقتی که میخواییم حساب زنده ها و درگذشتگان را داشته باشیم هر چهار سال یک دفعه که یک روز اضافه میشه و اون روز را در تقویم مینویسن روز عبرداد عبرداد یعنی روز کبیسه ولی چه روزی باید باشه به نام وشروش دوم باید باشه یعنی چهار سال یک دفعه دو روز وشتوش باید داشته باشیم برای که اگر کسی در اون روز کبیشه روز وشتوش دوم درگذره سال دیگه سالش روز وشتوش باید باشه ولی اگر بگیم روز اورداد سال دیگه روز عورداد نداریم و معلوم نیست که چه روزی بخانیم پس چهار سال یک دفعه ما دو روز به نام وشتوش داریم وشتوش اول و وشتوش دوم برای سال کبیسه اما امیر شادروان زبی الله بهروز درباره باره شناسی و علم نجومی که از داشت میفرماید زردوش در دوشت در سالگی زیج تازهی در استان نیمروز یا سیستان کنونی بنیاد ناد البته سیستان و بلوچستان در قدیم بعد از توش معروف بود به کشور نیمروز در سیستان کنونی بنیاد نهاد و با آن با استالاب و دیگر ابزارهای ستاره یابی البته استالاب گرچه با تا می به شکل عربی ولی این کلمه فارسیه استار یعنی ستاره که ما که حالا میگیم استاره یا ستاره در انگلیسی هم هنوز میدن استار. پس استر پس استار یعنی ستاره لاب یعنی یاب یعنی ستاره یاب پس استر وسیله وسیله است که با اون ستاره را میتونستن زیج کنند و این کلمه فارسی است همون کلمه زیجم در فارسی زیگ بوده با گاف بوده بعد در بعد از اسلام گاف تبدیل میشه گاف فارسی به جیم مثل بزرگ مر میگیم بزرژ مر یا بوزرژ مر همینطور زیگ تبدیل شد به زیج و آن با استالاو و دیگر ابزارهای ستاره یابی به پیوهش و کاوش در گردش زمین به دور آفتاب و یافتن سال درست خورشیدی و روش برگزاری کبیسه و پیراستن تاریخ پیشینیان پرداخت پرداد پیراستن تاریخ های یعنی پیشتر از این به طوری که گفتیم سال شمسی ما در ایران داشتیم و البته سال شمسی خیلی مشکلتر از سال غمری است وقتی حساب کنیم سال قمری وقتی با خورده آفتاب با ماه در آسمان پیدا میشه میگیم اول ماه و همیشه در سال قمری شب جلوتر از روزه ولی در سال شمسی با دیدن خورشید 24 ساعت شروع میشه و اگر این اجارانامه های قدیمه را دیده باشید در قدیم مینوشتند به مدار 16 روز شبان یعنی اول روز میگفتیم بعد شب مطابق گردش زمین به دور آفتاب یا سال شمسی 24 ساعت با طلوع آفتاب شروع میشه ولی سال قمری با برآمدن ماه یعنی شب شروع میشه و اینه که در قدیم که میگفتیم 16 روز شبان حالا می نویسیم 16 شبانه روز حالا شب و جلوتر و حساب روز و ماه قمری بسیار آسونه با دیدن ماه ماه شروع میشه ولی گردش ماه به دور زمین مرتب نیست درست مثل خورشید نیست ماه همیشه سی روز کامل نیست گاهی زیادتره گاهی کمتره و اینه که تقریبا سال 11 روز سال غمری با سال شمسی ورق داره و سال شمسی هم با چهار فشل دنیا برابره وقتی مثلا سال خودمون فروردین و اردیبهشت و خورداد اینها ها ماه اول ساله مهر و آبان و آزر سه ماه نیمه ساله تابستون، ماهش جداس زمستون ماهش جداس ولی سال غمری با فصول چارگانه برابر نمیشه و این است که حتی در کشورهای اسلامی بیرون از ایران اونها هم ماه غمری دارند هم ماه مسیحی ژانویه فوریه همینجوری حساب میکنن ولی خوشبختانه در ایران ما علاوه بر ماه غمری که کشور ما الان مراد میکنه همونجور سال شمسی قدیممون را هم داره اجاره میکنه و سال شماری رسمی ایران همون سال ایرانی است که نیاکانمون از قدیم داشتند، یعنی فروردین و اردوشت و خرداد و غیره زردوشت برای آن سیستان را برای ساختن زیج خود برگزید. که دانش ستاره شیناسی خود دریافته بود که خط نصف نهار یا نیمروز از سیستان میگذره و و کره شمالی زمین را به دو بخش برابر جدا می سازد و هنگامی که در سیستان نیمروز شود تمام نیم کره شمالی روز است خواب پیش از نیمروز روز خواب پس از نیمروز از این رو دانشمندان ایران این بخش ایران را پس از زردوشت به نام کشور نیمروز خواندند. پس ما همونطوری که الان نصف نهار گرینویچ داریم و در انگلستان اون حساب میشه ما در قدیم نصف نهار نیمروز داشتیم و اشو در توش دریافته بود که وقتی سیستان نیمروز میشه قسمتی از دنیا صوبه قسمتی از دنیا عشره و تمام کره شمالی در آفتاب قرار میگیره پس این علم ستاره شناسی زردوش را هم اده زیادی از دانشمندان ذکر کردن اما راجع به علوم دیگر ما میدانیم که اشو در مثل ایسا گاهی بیماران را که میومدند به حضورش اینها با علم روانشناسی معالجه میکرد باز میخوانیم که پدر گشتاز که همون لغرادشای کیانی باشه مرض سر داشت و اشدرتوش این را معالجه کرد باز اسب گشتازشای که 14 دست پش فلج شده بود باز میبینیم که اشو در تشت آمد و معالجه کرد پس در علم پزشکی و دام پزشکی و ستاره شناسی و روان پزشکی اون علم خدادادی که داشتن معالجه می‌کرد اما علم روان شناسی در قدیم در ایران باستان به نام علم مانتره می‌خواندند مانترا یعنی کلام منش انگیز همون کلمه مان یا من که وہو من اینا هست کلمه مان یعنی مغز پس مانترا یعنی کلام منش انگیز یعنی تلقین کننده و از قدیم ایرانیان دریافته بودند که بسیاری از امراض در اثر فکر به وجود میاد مثلا کسی که ناراحتی داشته باشه ناراحتی خیال یک روزه موش سفید میشه یک روزه سه کیلو وزن کم میکنه از غم و گسته این یعنی چه؟ یعنی وقتی فکر ناراحت باشه جسمم ناراحت میشه پس اینهایی که روانشناسند فهمیدن که اگر جسمم ناسالم باشه ولی تلغین کنیم به او که تو دیگه خوب میشی و فکرش را متوجه بهبود کنیم این خوب میشه ولی اگر ایمان نداشته باشیم نه نتیجه نداره یکی از شعرا میگه هر که امید به بهبود نداشت خواندن ورد و دعا سود نداشت پس در درجه اول آدم باید خودش رو آماده کنه برای معالجه روحی خودش و یکی از راه های معالجه تلقینه قدیم وقتی مریض میشدن دعا همراه میکردند. یا اورادی میخوندن و ما هم در اوستا بسیاری از عوستاهایی داریم که منش انگیزه یعنی آدم به خودش تلغین میکنه که دیگه خوب میشه مثلا اردویشیشت اگر ملاحظه کنید ورهرامیشت سروشیشت اینها کلام منترست یعنی تلقین کننده و ثابت شده که اشخاص متعصب اشخاص وسواسی بیشتر اوقات عمرشون مریضن برای که این مرض را در خودشون ایجاد میکنند. ولی اگر عادت کنند به اینکه مرتب یک نماز به خصوص بخوانند، یک آیه عوستای به خصوص بخوانند، این همیشه در برابر این افکار زشت و تحریک کننده مرض این مقالیجه میشن و بس ها اتفاق افتاده که یک شخصی میره پالو دکتر متخصص در یک نوع بیماری و هرچی اون دکتر دوا میده به اون شخص یک شخص بخصوصی میبینه اثر نمیکنه. بهش میگه خانم آقا شما به من عقیده ندارید برید پلو دکتری که بهش عقیده دارید اون زودتر شما رو خوب میکنه و چون به من عقیده ندارید خوب نمیشید هرچی بهترین دوابت بدن و این بره پلو یک مثلا گیاپزش یک گلگ آزبون بهش بده بگو بخور این میخور خوب میشه برای چه برای که ایمان داره به اون پزشک. پس در درجه اول وقتی پالو پزشک میریم باید ایمان داشته باشیم که ما را خوب میکنه و در درجه دوم باید خودمون آماده باشیم. هر که امید به بهبود نداشت خواندن ورد و دعا سود نداشت. پس میبینیم اشو در تشتم شوری از این بیماران را همونطوری که ایسا هم بعدا عمل میکرد به واسطه تلغین عمل کرد و این نوع تلغین هم امروز در اروپا متداوله این هیپنوتیزم و مشمریزم و اینجور چیزهایی باعش میشه که شخص باور کنه که دیگه خوب میشه مثلا قدیم وقتی مریض می شدن می خونه موبد موبد هم اینا را در خانه خودش رخت تمیز و پاک اینا پند می تو اون پسکم و مصف استلا و سهر که می یه عده موبدان دور اون مریض می و وندیداد می این مریض هم می بخوابه و در حال خواب و بیداری میدید که موبدان دارند همه برای او عوستا میخونند برای تندرستی برای شفا و هر دم به خودش تلغین میکرد که من دیگه خوب میشم و همین تلغینی که در داخل خودش به وجود می آورد و منشش را آماده میکرد برای بهبودی باعث بهبودیش میشد اما راجع کسانی که به توشت ایمان آوردند خود اشودار توشت در گاتا بارها یادوری میکنه از جمله میفرماید کی گشتاست یاور آین من است کسی که با پذیرفتن کیش راستی خداوند را خوشنود ساخت سزاوار است که چنین کسی به نیک نامی رسد احورا مزدار چنین کسی را زندگانی جاوید بخشد و او را به فردوس برین جای دهد ای جاماس که وزیر شاگوشت بود ای جاماس و ای کسانی که به من گرابیده اید از بهترین بخشش پاکمنشی برخوردار گردید کسی که آین مرا بپذیرد و برابر آن رفتار کند در زندگانی آینده در سرای جاویدانی از بخشش نیک بهرمند گردد. اینجا باز یک اندرزیه یک کشی که به من گرود و برابر آین من زندگی کند خوشبخت میشه یعنی هر که گفت من زردوشتی هستم یا زردوشتی زاده هستم یا نکنیم که به قول عقیده ها دیگه راست میریم بهشت خوشبختی این دنیا و اون دنیا مال ماست نه عشود درتوش میگه این اندیشه و گفتار و کردار شماست که این دنیا و اون دنیا را برای شما بهشت یا دوزخ خواهد